در سومعه و مدرسه و دیر کنش ترسندز دوزخند و جوگیا و بهشت آن کس که ذعصاب خدا و باخبر است زین تخب در اندرون خود هیچ نکشت. دنیا و دیدی و هر چه دیدی هیچ است و نیز که گفتی و شنیدی هیچ است سر تا سر دیدی هیچ است و نیز که در خانه خزیدی هیچ است در خواب بودم مرا خردمندی گفت که از خواب کسی را گل شادینش گفت کاری چه کنی که با عجل باشد جفت میخور که به زیر خاک میباید خوفت. دل سر اگر که ماهی دانست در موت هم اصرار الهی دانست اکنون که تو با خودی ندانستی هیچ بردا که ز خود روی چه خواهی دانست.